این صورت کن جمله نقش است و خیال، آرف نبابد هر که ندارد این حال، بنشین قده پاده به نوش و خوشت باش، فارغ شو از این نقش و خیالات مهار. با سرب قدی تازه تر از خرمن گل، از دست مده جام می و دامن گل، زن پیش که ناگه شود از باد عجل، پیراهن عمر تو چو پیراهن گل، در سر ما گذار هیچ سودای محال می خور همه سال ساغر مالامال با دختر رزنشین و ایشی میکن دختر به هرام مادر به حلال. اشقی به کمال و دل به جمال دل پرسخن و زبان ز گفتن شده لا زین نادره تر که دید یا رب جهان من تشنه و پیش من روان آب زلال